الحمد لله بالعالمین و صلی الله علیه سیدنا رسول الله و آله الطیبین و قاهرین المحسومین و لعت و دائمت و علیه داره مجمعین اللهم افیقنا جمیعا مشتقلین و الحمد رحمت که یا یه توضیح راجع به این عبارت مصباح و شریعه از میکنیم ما دیروز تغریبش این بود احتمالا این عبارت از کلمات به اصطلاح معتذله باشه من ظاهرم بدخون بودم اونی که به کلمات معتذله شبیه اگر فستقفرو باشه اما فستقفرو له این دیگه به کلمات معتذله نمیخوره اصولا فستقفرو له یک نوع تحبده اون میشه اصلا قاعده اغلایی با قاعده اغلایی درست نمیشه از کنم که بعد تا اینجایی که من نگاه کردم مثلی دوزش توب بله فستغفر الله له لح, لح رو نهیده بودیم اگه فستغفر الله لح باشه عبارت معتظره اما این فقط اشتباه دید و زود و اما اینکه که مثباه و شریع عبارت یا روایتش عبارت امام صادق نیست و یک مخلوطی سالا از ممکنه کلام معتظره باشه و علمای عدق و اخلاق باشینا باشه تصادفاً برای همین فائدش اصل این مطلب درسته یعنی میشه با مراجعات به مصادر متعدد پیدا کرد که مثلا این مطلبی که تقریبا حدود دو قرن فاصله ولی که بیشتر ما بین امام صادق تا بعد تا این زمان ظهور کتاب به نظر اواخیل قرن چهارم و اول قرن 5 میاره وقتی که سابقا نگاه الان فعلا نمیتونم بگم من عین عبارت مسوا و شریعه رو میخونم که معلوم بشه قطعا یک تأثری در این وسط بوده حالا کلمات علماء اخلاق بوده چی بوده مثلا جمع بین روایات بوده از این کتاب مستدرک مرموم حاجی موری این چاپ جدید جلد نه صفحه صد و هیفته از صادق و مثل آشه طبیعتش اینطوری اولیق قال از صادق و الغیبت و حرامون علا کل مسلم خب ما در روایت موسادای نباشیم این معصوم معصومون صاحبها فی کلها ک و صفت الغیبه اصلا این تعابیر به امام نمیخوره حالا اگر من مختصر میخونم چون ممکنه یه متونی رو ما شبیه این در این فاصله زمانی پیدا بکنیم که این واسطه باشه بین امام صادق و این ان ترکرا احدن بمالیس اند الله ای چه عجیبه به ما اند ای عیب الیسه بعدم باید لیسه ایون باز باشه نه ایگو او تزم ما تحمدوه اهل العلم فی کلمه اهل کامر و. اما ال خوض و فی ذکر ال واقع به ما هو اندلاع مزمون و ساهم بهو معلومون معلومان فلایسه بخیده کنن بریه پرده. و به. این کره ساهم بهو اداساهم این اداسمه میشه این معلومشی اون در واقع انتظار آقا ما یک راهلوسمه ار. او معنا میکنه یعنی اون به ما یک راهلوسمه اد. در چیزی که اندلاع واقعا مزمون باشه، اون دیگه اولو ناراحتن بشه این. درست نیست و كنت انت معافا عنه ان وخاليا حالا اینم یه قید زیاده است که تو باید اون رو عیب نداشته باشی و تكون في ذلك مبينا الحق من الباطل به بیان الله ورسوله خب واضحه یعنی این عبارات حالا این در این 250 سال فاصله بین امام صادق و ظهور کتاب این از کجا گرفته شده که هیچ یک از این عباراتش در روایت ما نیامده و بالاكن به شرط انلا یکون یک ذل قائل بذلک مراد غیر بیان الحق و الباطل فی دین الله عزوج ظاهر هم موارد استثناء قیدت که مثلا تجر و تعدیل و اینها مرادش باشه و اما اذا اراد به نقص المذکور به غیر معنا، المعنا فهو ماخوذ به فساد مراده حالا اون عبارت دیروز به معتزله کاملا واضحه که عبارات متکلمین و عبارات مثلا یه چیزی ما بین متکلمین و صوفیه و غرفاینا فا او معخوضم به فساد مراده و انکان ثوابه محلی عبارتی که دیروز خوندیم که مرحوم شیخ به نراغین اصفاد دادن ف اگر اون فسخر الله لح باشه نسخه اینتون من چون نسخه دیشب گشتم نسخه خودم پیدا نکردم این فسهلوانه سهلا نمانه ای تزاید، اون ای تزاید یعنی با نور او مبنیه. فهم لام تبلوغها و لام تلهها، تلهها تبلوغها در اینجا مورد معنی است. غیبت و او نرسید، ولام تله حق او الله له. این کلام ما تزل نبود. ول غیبت او تأکل الحسنات کمتر کل نارال هت هم این داریم، این دوادی داریم. آه الله تعالى علیموساد نامران هلا نبی نواوسی درباره سلام المخطاب هو اخر خل کل جنته انتاب اینم در روایت اهل سنت داره و این لمیته هو اول من نار. النار قال الله تعالی ایوه و احدکم یاکل لحم اخیه میسان فکر الیه تو بذراوات بعض دریم بعضی هم و وجوه الغیبه که چند روز پیش هم خوندیم اجواله طغاو به ذکر ایبن فل خلق و الخلق و العقل و فعل و معاملت و مذهب و الجهد و اشباهی اینو که کلا نداریم و اصل الغیبه تنوعا و اشارات انواع که این هم نداریم شفاء و غیظ و مساعدت قوم و توهمت و تصدیق خبرن بلا کشفی و سوء ظن یا سوء ظن بر درجو میشونه و حسدن و حسد و سخریتون و تعجبون و تبرمون و تزیون فان فیاسی و لکه مکان ابر و این عبارتی بود که در مفتاح چون بعض آن از بحث که به چه دلیل مثلا این کتابه خب کلام خیلی واضحه دیگه به تحلیل ننشسته باشه بدون نیاز به تعلیل بطلان این که این کلمات رو به امام صادق نسبت بدیم با اونایی که ما داریم کاملا واضحه دیروز راجع به این روایت هفت سبن عمر که از فیغمبر نارکد از کردم من ما در همین کتاب کافی هم از طریق بردی بر پدر از هفت سبن از دار و از هفت سبن عمر وقتی این روایتی ای که دیروز بود که کفارت و غیره انت لمن سقفره لمن این رو من از کتاب خفا عجلونی عجلونی تقریبا از دیویست و خورده سال پیش بود گفشه به ما آسه نسی سال ت ایشون در این جلد دوی کشف فتاخ خفا کار لطیفی رو انجام داده دی از احادیثی که مربوط به طل اینها رو برده بررسی سندی و مفنی کرده اسمشان کشف و موسی که من موزیر الالباس من در من الاحادیس الا السنت ناس البته اجدونی از ائمه شان نیست از بزرگانشون نیست از قدماشون هم نیست از حدود 300 سال قبله نشریه متوفای 1162 70 سال نشد هنوز 250 سال تنید علیه حالا من به نیست اما جزء مثلا ائمه شان باشه که جلیل و قد باشه حتی مثلا جلال سیوچی هم نیست اون حدا نیست خیلی جزء شخصیت های بزرگ علمی شون نیست حالا ما به مقداری که ایشون قدرت نقد میکنه میکنه ایشون روایت شو رو اینجوری قرار داده و کتاب بحر السننت کفاره تو من اب تططحو انت له اگر این چاپ خدمتتون باشه این چاپای متعذب داره که شوت خطا دفاع خیلی سنیاط در طخش کردن جلد دو صفحه 102 به حسب حروف هجاییه در حرف کاف کفاره الغیبه کفاره من ختبه انت سرقه له وقت مصادرش رو اینجور نقل راهول خراعی فی المصابی و البیحیف شعبه اول ایمان علی و دینوری فی المجالسه و ابن ابو دنیا و غیرهم ان انس مرفوعاً اینا همه مسادر سوچار هن. یعنی مسادر خیلی بعضش که سوچار همون طرفت هست مرفوان مرفوان یعنی ارز کرده مرفوان رسول الله اگر گفت مغبوفه این کلام انس چون صحابیه مرفوان پس این در عده از کتب غیر معترمشون توسط انس به رسول الله نسبت داده شد و لفظو بعضه هم کفارت اختیاب من تستق فرل من اختبتهو بعد وارد بررسی سند میشه من این رو ارز میکنم برای اینکه شبیه این کارها کلند بشه کارهایی که اهل سنت انجام ده تکمیل بشه ما هم شبیه اون انجام بدیم خیلی برای ما مفیده و فی سندیه امبسط ابن عبدالرحمن زعیفون جدن کمافل مقاصد و رواه الخرایطی من وجه آخر انعنس مرفوعاً اند اصل این لفظ به نظر من میاد سر اینکه که ها توضیح کردن این بوده ان من کفارهت الغیبه ان تسخره من ولیضا دو تا راه داره راه دیگه هم داره یعنی کلام یک راه شینه ان من کفارهت الغیبه ان تسخره لو ان كتبت الله مغفر لنا و لهو. این اون هم داره خود مرحوم شیخ هم شاء الله آخر اخر بحث میواد افعل الله لنا وله منا خطاب لنا وله خطاب نا و هو ای این هم زعیفه لکن له شواهد یعنی طبقه دیگر می هم آمده که اونها هم زعیفه لکن برای شاهد خوبه چه این دعبین ابن حدیف الکامل عن سهل بن سعد سهل معروفه مقصه یه چیزم داره مال ازدواج با اون مرفوعاً به بازم بازم رسول الله من اقتاب اخاه فستب فرله و او کتباراتون لن و فی سنده سلیمان ابن امر نخعی این سلیمان احتمال وضع داره این احتمال جعل کرده باشه حالت وضع داره و این در دارقتنی به سنده فی هفت سل ایلی زعیف اون جابر رفعهو پس اینجا سه تا از صحابه رسول الله انسو به اصطلاح جابر بن عبدالله انساری و سهل بن سعد سائدی تعبیرش اینه من اقتاب رجلن سمستق سم فر الله من بعد داله قفرت لهو غیبتو روچن شد و رواهو البیحقی انا ابی حریره الغیبتو تخرب و سون که داشتیم مطفتر و سائم. ولی استاستخدامها رو او وصلش میزن قیبت مثل پارچه پارچه سوم رو پاره میکنه با استقار مثل که میلوزیش مرتبش میکنیمروفو گری به ولی استخرفا رو یا رقب او ف من ازسطها امینکنه اننیجی به صمیی مرق فردا مخواد در مقابل روزه آمد باشه با روزری بیاد که چیز خورده ب روحو شده مردتن فریفن قال اقبه موقوفن این یکی رو که نسواد به ابو, ابو هرن موقوفن. موقوفن کلام خود ابو هرن یعنی این ثابت نیست که ابو الله رسولا نرکده اون گاهی این طوریش میمسته یک سندر که خودش که ابو هرن رسول الله میگه نه قضا متقیقا موقوفن ثابت و سنده هو زعیفن این تا اینجا مقداری بود که راجب صحابه و اسانیدی که داشت که حس کردین چجوری و ان ابن المبارک عبدالله بن تقریبا معاصر مام ساده و مصعب بن از فقهای معروف این جزو کسانی است که تا سالها تا همون که میگن قرن پنجم که انحصار مذاهب در اربعه شد مذهب ایشون هم معروف بود مثلا خراسانیاش اسم خراسانیه خراسانی عبدالله بن مبارک خراسان بیشتر تابع عبدالله بن مبارک بود که بعد دیگه مذهب او به اصطلاح برکنار شد پس اونم مذهب اربعهام و ان ابن المبارک ازختا به رجلان رجلن فلا یخبره دقت بکنید با این رو که ما امروز خوندیم فلا یخبره ولیکن یستقفه رو لح نره بشه بگیه ولیکن اللهم اخفر له بگیه و ان محبوب قال سالتو علی ابن بکار ان رجو نختب تو سم ندند قال لا تخبره ف تو قر تو قر قلبش تر تو قر یعنی اقراء یعنی تهیج میکنی قلبش ولی کن ادعوله و افن علی سنا بکن حتی تم هو بسیء تم هو بسیء تو بل حسدن بله ول الحاکم و صححه او حاکم نشو در استادک ول بله بیهقی وقال انه او اصح هو من قبله anu huzaifa بله این از حذیفه قال کان فیلسانی ذرب ذربان یعنی کمی زبان من تند بود مثلا تندی میکردم الا اهلی لم یعدهم علاقه ادایعدو تجاوز کردند به غیر واسه با زبان بچم تند بودم با دیگران نه فرسالت نبی فقال این انت عن الاستغفار یا حذیفه اینجا استغفار لهو نیست استغفار نفسیه اینی لا الله کل یوم معته این وقتی به مورد ما نهنفی ندارم قالف المساده مقاصد و هو این به حقی به نهبیهی من حدیث عبی موسا بعد خود اجنونی صاحب کتاب میگم به مجموع حاضهی یق عدل حکم علیه بلوز درسته حدیث کفار طلقی به انتستخفه رو نمیشه گفت موضوع در حد سابقه هم توضیح دادم در حدی نیست بگیم موضوعه اما ثابت هم نیست شواهد داره اما به حد وضع نیست داره توی یک سندش وضع هم بود اما در اون حد نیست یب عدل حکم علیه بلوض و امکانه اصح منه حدیث عبی هوری رو رفعهو این حدیث عبی هوری جز احادیث صحیح اوناس بنزدن تو بخاری هم هست این حدیث عبی این در این حدیث و قول خود جای بحث نیست بحث داره تو سغراست حدیث اینه من کانه اندهو مزدمتون لخی ها اینجا توش استهلاله قبل انیته یوم ولاد در همون ولاد دینار اون وقت این متنی که اینجا داره این قداره اما متن دیگرشون تو منکان لا اخیه اندهو فی مالیه او ارزه استشهاد او به مسئله غیبت این است کلمه ارذ شامل غیبت بشه چون او ترجمه اینجوری چرا کامل نوارید اینی که شما در ناقص این رب تو منهفی نداره این متن کی ایشون اورده من کان از انده و مزمتون لاخیف ولی اسهل هومن این متن به درو اینجا میخوره اون متن دیگه به درو اینجا من کانت لاخیه انده و مزمتون فی مالیی او ارزه فلی اسهل هامه قبل ان یات یوم لا در هم اولاد دینار این این درسته این به مان احناف میخوره لکن بنابر اینکه غیبت در ارز باشه اگه راه هم ثابت بشه نه امرویه ان ابن سیرین انهو قیل له، ان این قد اختابه که فتوهلوهو یا اینجا توهلوهو به نصر شاکه توهلوهو باشه قال ما کنتو لأهل شیعن حرمه الله تعالیم دقیقه پس یک حدیث رو ما چون اونجا هم خوندیم کفارت الاختیام کفارت الغیبه ان تستقفره لمن اختبته و چند شد چقدر اسانی بود؟ و ام و روشن شد اجمالاً در یک فقره از زمان جا افتاده بوده اون واسطه یا وزا بود یا مجهول بود یا ضعیف بوده. و از عجایب امر اینکه پیش ما هم همینطوره با حکومت وزا نمیشه. پیش ما سندی که این روایت داره مرحوم کلینی به سند خودش از برقی پسر از برقی پدر تو اینجا مشکل نداره. از حفص بن عمر ان صادق علیه السلام قال قال رسول الله بعد سؤال انکفاط القیبه قال انتسخ توله من تسخف له تستغفر الله علیه خیلی عجیبه من چون اسان ایشون سند ننوشته و دیگه وقتم نکردم که این مصادره که ایشون گفته نگاه بکنم نمیدونم این افرادی که ضعیف و اینا ها بودن در چه طراریه مشکل روایت ما طبقهش حدود قرن اواخر قرن دومه یعنی از اوائل قرن سوم و اواخر قرن دوم حدیث بیش از ما مشکل نداره. من میگم که خوب روشن بشه براتون. مشکلی نداره به خاطر اینکه برقی پدر هست و پسر رو بعد کی میاد این مشکل نداره. مشکل کجاست؟ فقط حفظ نوامره انساده عالیه. هم یک قسمتش مشکلش فقط حفظ نوامره. و این مشکلش هم اینه که جهالته دیدی اونها مشکل چون ضعف و ضعیف و ضعیف و جدا و ضعن به طور مستقیم مقایسه حدیث ما با اونا پس این حدیث الان معلوم شد که معلوم ظاهران از قرن دوم به بعدش مشکل داره از قرن دوم به اون طرف به طرز زمان رسول الله در متون ما هم مشکل داره دیروز وقتی نعل کردم برای اینکه بشه تصریحش کنم یعنی من خواهم توضیح دید. معلوشه که سرنوشت حدیث ان رسول الله پیش ما و اهل سنت تقریبا مساویه از قرن سوم به بعدش خوبه قبل از قرن سومش مشکل داره از سالهای 180 به بعد مشکل داره مشکل در پیش ما جهالته اما در پیش اهل سنت مشکل مشکل بالاتریه مشکلش کمتر جهالته احتمالا میدیم چون این حدیث من در اخیره انده مذمته فی ماله او ارزه این منشأ شده برای اینکه این استخبار در جزء رزق بشه به خاطر همین به اصطلاح که قیوت جزء ارز باشه از جمله روایت دیگری که در ما هست که مرحوم شیخ اورضا رو اخیر روایت و فی روایات سکونی المرویته فی کافی فی باب ظلم راست این در جلد ایمان و کفر کافی در باب ظلم آمدن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله عرض کردن دیروز عرض کردن این همون سند سکونیز از سن جعفر بیان آبایی قال قال رسول الله من ظلم احدن ففاتحهو فلیستغفر الله له فانه او تن له راجع به این حدیث در مسادری که ما الان داریم اینطوریه به لحاظ به اصطلاح اون مسادری که الان بخوام به حساب ترتیبی زمانی خودمون الان ارز بکنیم اولین مستر ما کتاب کافی است که ایشان کرده از سپونی اوورده در افواب ظلم ایشان نعر کرده و متنش همینطوره در کتاب کافی هم که مثلا یک چیز مختلف فاور مثلا کفاراتون فعل اینه متن نسخه کافی همینه تو نسخه کافی منزلن احدن ففاتهوز البته ففاتهو این ربطش به باب غیبت از طرف شیخ انصاری خیلی عجیبه ارتباطی که باید اثبات بشه که به اصطلاح ریبه یک شخص ظلم بونه ظلم یعنی حصول اذیت به طرف مقابل حالا این منوسی که ظلم سر بکنه برایش این ظلم به خودش که است که گناه انجام بده اما ظلم به او بودنش خیلی روشن نیست الان ففاتهو بعدش هم توش عنوان فوت داره خب شاید این تصور میکنی که اگر بره استحلال بکنی لبنی فوتو شاید موزن الان یه حاله مورد این روایت ففاتهوس و این روایت رو مرحوم کلونی از کتاب سکونی آورده سندش هم ذکر کرده امر واضحه این راجع به متنی که در کتاب س... کافی هست این روایت رو در کتاب سوابال اعمال هم شیخ صدوق آورده لیکن در اونجا در صواب العمال من ظلم او ففاتهو فلیستغفر الله له نداره در صواب اعمال صدوق له نیست فلیستغفر الله تنهاست که این حسب قاعده هم هست حسب قاعده بین منا که اگه گناه باشه نصد به غیبه و از جهت دیگه اگر خود روایتی حساب بکنیم حسب قاعده نیست چون ظلم دیگری باشه توبه بدون رده حق مردم به اونها نمیشه دقیق کردیم؟ در متن شاید سر این کلوات هم خیلی مشهور نشد همینه چون این معناش اینه که اگر انسان ظلم به کسی کرد حق کسی دیگره با استخبار لح یا استخبار لنفسه مطلب حل بشه این نمیشه نه. علایه حاله در متن کتاب سواقل اعمال صدوق قدس الله نفسه که بعد از کله نیست طبعاً با یک فاصله بعد از کله نیست ایشون از همین مسترم آورده من علی بن الرمانی سکونی انجم مصدر رو تصویح داره سکونی پس بنابراین تا اینجا میتونیم اینطور بفهمیم اگر در صواب الاحوال صدوق هرچند معلومه صدوق مشکل داشته لا در کتاب فقه غالباً میاره مناسبش اگه قرار جای مناسب در باب فریضه داشت الان که ماکان این حدیث رو در صواب العمال آورده، لكن متن حدیث مشکل داره. در متن حدیث کلمه فلی استغفر الله له نداره. و مسارش هم یکیه. اگر ما باشیم خیلی خوبه مولانا قصی باشیم، ظاهراً دو نسخه از کتاب سکونی در قوم بوده. در یک نسخه لح بوده، در یک نسخه, نسخه لح بوده. در یک نسخه لح بوده، در یک نسخه فلی استغفر الله بوده. حالا این تا اینجا به حسن علم ما سومی که بعد از صدوق داریم شاگرد صدوق مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص مرحوم شیخ مفید در اختصاص این حدیث اوورده لیکن انجعفر محمد انعبی همه آبایه واضحه که کتاب سکون تربیر تربیر سکون اصف سکون نورده اونجا هم داره من ظلم اهدن او فلیست تغفر الله چون احتمال داره اختصاص کتاب اصلش در قوم بوده که از قومی آورده و من مفید نهار کرده حالا وارد اون بحث نمیشیم اگر این کتاب البته در این کتاب مستدرک نهار از اختصاص به همین مقدار ده. نه تو اختصاصی که ما داریم چاب شده فلیستقفر الله نه و کفارتون الله در این متن بازم همینطوره ظلم است و فاتحه و فلیستقفر الله یعنی این معید متن مرحوم میشه. ما هم کلینی رو می‌دونیم از 15 هست نیستون در چه چهارم در قم چه خبری میدود رابطه نسخه کتاب معلوم میشه کتاب سکونی دارای دو نسخه اصلی ظاهرا و یک هم آرون گفتن که مرحوم کلینی از وقت است از صدوق ارث کرد روشن نیست اساساً مخصوصاً اون جاهایی که صدوق همون روایت کلینی رو میاره ما احتمال داریم که شاید مراد صدوق تصحیح ابوات کلینی باشه یعنی متعمداً صدوق آورده صدوق میخواد بگه تو نسخه مثلا سکونی فلی استغفر الله له نیست توش چون مرحوم صدوق بعد از کلینی و محدث بزرگوار است و عین اون روایت آورده و از همون مصدرم آورده احتمالیه که ما میگیم که نظر صدوق این بوده در واقع هدف صدوق این بوده که بگه این نسخه ای کلینی روشن نیست امر شوچن نیست فلی استغفر الله استغفار میکنه نه اینکه له یعنی به عبارت دیگر ظلم مردم ولی و حق ناسه اما اگر نمیتونه دیگه حق و ناسه بکنه این طرف مرده راهی نداره گم و گور شده مثلا افتا قیبتی کرده هیچ راهی نیست که از او استهلال به طلبه فقط استخبار بکنه مثلی که ما در روایات داریم که کسی که میتونه کفاره بده استخبار بکنه مثلا کفارش پرست کن مثلا نه اون کفار امکان کفار نیست استقفار کنه. اما میشه تطوعی شد مشروطه این باشه که مثلا تدریجان بده حالا اتامش 60 مسئله اینه که ده تا ده تا ده تا بده. هر وقت همان استفاده میکنه و میکنه استقفار کافیه. این پس یک مطلبی سی نفسه که انسان حق و ناس رو اگر نتونست پرداخت بکنه، اون وقت مسئله استقفار. الان میتونم کردم کهم این حدیث با بحث غیبت این است که این جز زول برشون فاتحو داره در جایی که نتونه استحلال بکنه پس بنابراین استخبار ش... شیخ چه این روات اینجا آورده قدس الله نفس این روات که زارش به قیبت نمخ این هم متن سدوم ما مستر سدوم ما البته اختصاص نسبتش به منحور شیخ مفید روشن نیست احتمال قوی باشه کتار بوده که از آن قوم و بغداد و بعد منحور شیخ مفید رو نحل کرده و هر حال کاملا با ملاحظه ی معلومات سابقه ما واضحه که شیخ صاحب این کتاب اینکان از کتاب سکونی گرفته اسم نبرده همون تحبیل سکونی جرم. اصلا اینجوری جرفه رو من در نعبی آبایان علیه قار رسول الله شبیه این تحبیل جرمان و ظاهرش واضحه کتاب سکونی است. این تایید میکنه نسخه سواب از رو در نسخه اختصاصا هم لح نداره این تا اینجا سفه نسخه ارز کردیم چون حالا ما تاریخ بشه میزنیم کتاب جعفریات احتمالا اوائل قرن چهارم تدوین شده و شواهد نشون بوده هم اوائل قرن چهارم سی سد و به بغداد رسید بعدم البته، در مثل تدوین شده جعفریات ازش در مثل به بغداد رسید ارز کردیم ازش نه رو تنه سنی ابن حدیث صاحب کامل فضو عرف خودش مصر رفته از خود معلف کتاب رو گرفته اجازه گرفته عرض کردیم در کتاب از کتاب های دیگری که از این کتاب نرفته دائم اسلامه که ما کلینی و ما بین شیخ صدوقه داعم هم نداره فعلا تو دائم اسلام فعلا این نیست به هیچ مطمی نیست ما اگر فرض به این بگذاریم که در زمان کلینی این کتاب به بغداد آمده اما بغدادی ازش تلقیه به قبول نکنده این حالا مال ازل به از مسدری مال برنه چهار هزاب نمی‌کنیم حساب هزاب نمی‌کنیم در برنه ششم مرحوم صد فضل الله راوندی سید بزرگوار ایشون از توسط بعض از اهل سنت همین نسخهی بغدادی نه این نسخه ای که اول از نسخه بعدی ساله احمد دیباجی نقل کرده اندم نواده چاپ شده اینا تماما همین کتاب جعفریات حالا ما اگه این رو این زمان بگیریم حالا فرض زمان بروزش به این اصحان. حفظ کردیم در قرن چهارم به بغداد آمد اصحاب اعتماد نکرد بعدها در قرن ششم توسط راوندی نسخه نرسید باز هم اصحاب بعد ما نصف که مرحوم علامه دیگران اینا اعتماد نکردن در غن سیزدهم یا چهاردهم از یک نسخه از هندوردن زمان آیه برود که بعد مرحوم حاجی نوری برداشت نقل کرد بعد از نقل حاجی نوری نسخه مشهور شد این بار سوم گرفت دیگه بار اول و دوم نگرفت بار سوم این نسخه گیره که آی بغورجری هم خوافردند که الان دیگه در اختیار هست. دقت فرمودید؟ بهلا دو بار این نسخه در کتاب‌های شیعه اومده نگیره و اسخریم زارن کتاب سکونی شواهد کاملا حاکی است که کتاب سکونی است. در این نسخه جعفری یاد الان این جوره: منزلم احدن فآبهو به جای و آبهو کلمه که تریج آمده فآبهو است. ف از تغفر لاهله کما زکره البته کما زکره هم هر شاد تو بعض از اونه کلا ما زکره که سابقا ده. در این نسخه فاتحو نیست در این نسخه آبهوست ولذا حاجی نوری هم اینجا در مستدق به این اتبار این احتمالش بهتر از اینیست که شیخ انساری ورده، نسخه فاتحهو خیلی رفتی به نداره آبهو باز میخوره منزل و هو که این ظلم به نحو عیب باشه عبامه عب در حضورش باشه پسترش باشه قیبت یکی از مسادیقشه بنابراین فلی از سخفر الله لح. اونجا هم لح داره کما زکرهو نهو کفارتون لح این هم راجع به متن دیگر حدیث معلوم شد که این حدیث واحد که ظاهرا اصلش بستکونی برمیگرده الان کل تقدیره نسخش برا مستقبال لح نداره این عظلم الله تعالی نازنین بذنه اول بابا ما شود تو هست من از الله کمال که اواو بده که نه من ببینم من چون بره من دیستیو خود جعفریات سفهش هم نگاه کردم نگاه نکردم اینوز خودم نگاه نکردم من به نظرم از حاجی نوری در مستذک نرکردم مگر باز اونجا اشتباه کرده باشم اینو در نسخه حاجی نوری ببینم اینجا ایشون داره علیه السلام بله بله علی الله اینجا هم الله من تو این دیده بودم صفحه 130 مستدرک جلد 9 همین با موضوع تکفیر اختیار من این نسخه دیدم من ولما احدن فاو بهو فلی استغفر الله له کما کردم این در من خود چاپ جدیدم داره؟ چاپ شده این داره. چاپ حروفیه، همون قدیمه. حالا من به هر حال، پس معلوم شد که مسئله جعفری‌ها هم پابرجاست. به هر حال من نقل کرده از کتاب واجی نوریز، اونجا فلی استغفر الله له داره. پس معلوم شد که متأسفانه این روایت واحده که از کتاب سکونیز، این هم به جهات مختلف اختلاف متن و شدیدی داره، با اینکه یک سطر بیشتر نمی‌شه. فوالا هر کس این صادق به واسطه سکونی غالبش در کتب اهل سنت هست البته در کتب اهل سنت تو روایا خیلی درزی 3 و 4 نه اینطوری نه هر کلا توی کتابای اهل سنت از ابن عبد دنیا نقل شده که من منزل عنه الفاطهو اونجا هم فاطهو داره من قبل ان یخرج من مظلمته اگر این زید یخرج من مظلمته دیگه کاملا واضحه که فاطهو است یعنی اگر این زیل باشه در رباطه ابن به دنیا ففا من قبل انیخ دیگه کاملا واضح فا آبهو تصیف این من قبل انیخ رود البته خود من احتمال زنی خود من حالا این رباطه ابن دنیا رو نهاره کردن قاعدتا من چون تو روحات هم دیدم مشابهشه گاهی کلام مال پیغمبر نیست مثلا کلامی کلام از انس یا عبدالله مسعود یا حتی از تابعین از ابن سیرین از حسن بسری ایشون به امام ساده نسبت میده. متنش بیشتر میخوره به همین کلامو صاحبه و اینها به حدیث بودنش هم الائین ماکان این روایت و اهل سنت هم دارن نقل کردن به اهل سنت در کتبشون نعبه دنیا اون متنی که اونا نقل کردن با این متن حالا قاید بقیه رو بخونه اگه از کتب اهل سنت در بیاریم من قبلا انیخت رجان نمیده اون محطش فریست خفر الله لحه یا فریست خفر الله علایه حاله بنای عملی علما برای نیست که به مجرد فوت طرف حق او ساقت میشه یا برسه داره یا راه بر میداره بد مظالم میداره به مجرد استغفار کافی باشه کافی نیست یک نکته هم من عرض بکنم در کتاب اهل سنت و در کتاب ما متاسفانه اولین کسی که در کتاب ما متعرض شده مرموم صدوق در کمال و دینه به مناسات عمر امام زمان این قصه رو نقل میکنه و میگه صحیح همه اصلی خیلی عجیبه. یک شخصی در حدود قرن چهارم سالهای سی ساد سیزده،, سیزده، پیدا میشه از همین مغرب آمد از مراکش شمال آفریقا ادعا میکرد که من مثلا در یک سفری با پدر ما عموم بودیم و به درخوری حضرت خز آب و من آب حیات و پدرم حی من عمرم طولانی شده بقاطر اون آب معروفه در المعمر المغربی اون عبد دنیا است دنیا معمر مغربی اون اسمش علی عثمان ما زهره که اون یک نفر جعالی حالا این در سال سی سد می سی در وقت فوت پیغمبر من, من سی ساله بودن یعنی عمری بوده سی و پیس سد سال, سال در وقت فوت و اگرم آبحیات خود بود میمونیم تصال سال, 14 سال بعد فوت شد حالا این حدیث مروون صدیق در کمال الدین آورده تو کتب اهل سنت وجود داره روایت داره ازش نقل کردن چون وقتی نهرفت من علیم بن نبی تا وقتی اون که از امام هم با من با, با خلفا بودن بعد با علی بودن تو جنگ سفین بودن توی صورتش هم یک جای به زخمی بود گویا از تعمیر با میان اون تازیانش زد این جای زخمی شده چنین ابو شج عشاج عشاج کسی که زخمی در صورتش باشه یعنی شکستگی نه سی یعنی جای ذخیره باشه. الاشج المعمر المغربی واضحه که هنوز در جریان اینه. یا حالا این یک مصیبتی بود در کتب اهل سنت اون مصیبت جای خودش متاسفانه این تعبیر صدوق که بسحه او این حدیث تصحیح کرده خیلی تعجب آور از شأن صدوق دری دینه. کیف خیلی بالا بحث می‌شیم این طبیعت امر بوده از مشاهیر این مدعین طول عمر همین ابو دنیاس معمر مغربی ام علی میگه من کربلاام بودن توی جریان کربلاام حسین بودم بعد فرا کردام یه چیزایی بود نظرم میگه چهار تا شیعه صادلهه پیدا کرده شروع کرد دروغ گفتن حالا این اطلاعاتا توی مذهبی داره که تو امام زمان بعد با حضرت رضا بودن با امام طهیر منم あれ حالا این بازه این شخصی که از جهانیم یک ابوالدنیا میگه باز از اون بدتر رتن اون در سال 600 ادعا کردن صحابه زمان پیامبر رتن اون هندی اون از هندی یه نفر گفتن پیرمرد اولغوزا زنبیران که خیلی ضعیف و اونم یک قصیده رو والا اونم چند تا حدیث در اهل بیت رو فزله بعضی‌ها گفتن چون این در فضل اهل بیت نره که سنیا بهش حمله کردن خب وازنه که جریلی آثار زید. به منجرد این که یک کسی پیدا بشه بگه ان عمرم 600 سال 700 سال و 4 تا حدیث جری در बारे اهل بیت این خیلی از عقل دوره الان که شماکان ما یک ابو دنیا داریم او همینه که به شما عرض کردم 327 وفاتشه و از حدود 313 ظهور شده 14 مونداه اهالی نوشتن مردان شنیدن که این پیغمبر در ازش حدیث نوشتن خیلی حرفای عجیبی قضیه داره اصلا توی شیعه ما اولین بار در کتاب صدوق اومده در مناسبت و طول عمر امام زمان اسم ایشون برده که مثلا طول عمر داشته و قصش نرد مؤمر مغربی اما یک ابن ابد دنیا داریم. این نه حالت زهد و برع و تقوا و اخلاقیات و شون اسمش عبدالله بن محمد با هم اشتباه نشه چون به وقت آ ممکنه اشتباه بکنه یک ابن اسد ابو دنیا کنایه است اسم کناییشه اون اسمش ابو است این عبدالله بن محمد بن ابید بن فلان این از شخصیت است، و در وقت داد هم بوده و خیلی روایت در روایت اخلاقی و قول خود داره و الخلق و روایت در اون زهد و معنویات و سیر و استفاده می‌شه اون ابن دنیا شده تصریح شده البته روایاتش زیاده اما در مسادر تو عمرش هم خب دیویستو به نظر هفتا این ابن عبد دنیا در زمان غیبت سهره این نقل میکنه منظلم اهدن ففاتهو قبل انیخ رجی من مظلمتی انداری که به ما کن این روایت الان پیش ما اثباتش بسیار مشکل ما چون به سکونی اعتقاد چندان نداریم و الا تقدير اینکه این باشه ظاهرا همین نسخه مرحوم کلینی و صدوق و مرحوم مفید در اختصاض که فاتحهو باشه نه آبهو باشه ظاهرا نسخه همینه ترسیدم حاجی نوری هم دو بار آورده در کتابی که در اینجا قیوتو آورده یکم توی باب رندوم ازاله جهاد نفس آیه خیلی هم نوشتن روایت ال جعفریات آسکندریدون دو تا روایت نیست یک روایت حاجی نوری دوباره بود الان که فماکان این ربایت به, به تمام طرقش محل اشکاله به خاطر انتهاش به سکونی و متنش متنشم با اون قرارینی که ارز کردیم ففاتهوز نه فعابهو با شواهدی که هست انصافا متنش ففاتهوز این فعابهو فراید توی یک آمده در سه مستر ما ففاتحو آمده کافی و سوال اعمال اخصاص منصوب به شیخ موفی ظاهرا همینه معیدش هم در اهل سنت فاتحوز پس این متن جعفریات هم ابهام دیگری داره به خاطر این اون فری از الله لحش هم مشکل داره اصلا شاید مراد این است که شخصی به هیچ نهوی نمیتونه باز هم مظالم باید عد بکنه این طور نیست که مجد استخبار کافی بشه فی کفاره نهو کفارتون اعتماد اعتماده به روایت بزار دارتم خیلی مشکله چه فست علی باشه یا نباشه پس این حدیثی بهتون مرحوم کلونی در اینجا مرحوم شیخ انصاری در اینجا آوردند رقتی به ما اهل و نداره بله که وقت گذاشتید بخشوده چیزی نمونده و شیخ رو فردا دیگه تمام کنیم میریم بحث استثنایات غیبت ان از بحث تو تا از و از کفر تو متن نه